خو خب بسم الله الرحمن الرحيم باب النواهي في البيع باب النواهي دربه يعني اون بي هاي كازل چي شده نهي شده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذه نهى كرد از رسول الله صلى الله عليه وسلم از بيع المنابذه خب خداوند سبحان ایشون يعني اين محقق اين كتاب روش داده خیزر محمد خیزر رو جزای خیر بده زیرا واقعا تمام اینا رو خیلی قشنگ توضیح داده میگه نه کرده از رسول الله صلی و وسلم از به منابذه به منابذه چیه؟ بریم ای پاورقی اینجا دیگه از پاورقی خود کتاب استفاده میکنی که واقعا کامل آورده خدا من. جزای خیرش دهد. میگه این از که هر یکی از دو متعاقد خریدار و فروشنده بیانداز آن انترا که همراهش است. آه؟ من این چیزی که دست مبی شما سمن میاندازیم. و همین کارو ایجاب کننده معامله قرار میدیم بدون رضایت آن تو طرف. پس انداختن از دو طرف. این که هر یکی از دو متعاقد آنچرا که همراهش هست و همین کار رو موجبه قرار بدن بدون رضایت والملامسه ملامسه دیگه چیه؟ ملامسه این است که لمس کند هر یکی از اون دو نفر کالای طرف مقابل رو پس واجب میشه با این کارشون معامله بدون اینکه علمی به حال اون داشته باشند یا رضایت و نها عن بی الحساط ببینیم تعریفو که اینجا می به این معنی نیست که کل فقه همین تعریف ارائه دادن بعضی ها تعریف دیگه ارائه دادن ولی این تعریف تبقی خود تعریف امام شافعی رحمت الله علیه و بزرگان شافیه هست و اکثر با هم یک یادا در بعضی جاز بعضی صورت های ریز با هم فرق داره و نها عن بی الحساط و نها کرده از حصاد حصاد خود حساد سنگ ریزه رو بیدند آورده در پاورغی این است که بیاندازد سنگ, سنگ ریزه رو در زمینی که مساحتش معلوم نیست هر کجا که اون سنگ رفت قرار گرفت اونجا اون منتهای اون مساحت فروشه اون هست این یک حالتش صورت دیگه هم داره به حساد این هست که سنگیزه رو بیاندازه روی هر کالایی که افتاد همون کالا مبی هست کالای فروخته شده چون در این بیال حساد جهالت وجود داره خیلی ها این تعریف دومی رو ارائه میدن در کتابه خب، بریم جلوتر ونها انبیال المجرح انبیال مجر از معامله مجر هم مجر دیگه چیه م، م، یعنی فروش جلیلی که در شکم حیوانه توزیهش بده و بیع المجر ان يباع بما في بطن هذه الناقه چیز فروخته بشه در مقابل آنچه که در شکم این ناقه هست چطور هست یا حیوان دیگر هست ونها أنبئ الملاقيح والمضامين ونها كارد مجأز معاملين ملاقيح ومضامين ملاقيح ما في بطون النوق من الأجنة جنيني كدر شكامي شطوري جمي ملقوحي هست مضامين هم كدر كماري نارين هست حيضان النار هست حبل الحبله. و ناهی کرده از به حبل الحبله <تصفح> حبل الحبله اینه که این بچه ای که الان در شکم مادره به دنیا بیاد و بعدا همین به دنیا آمده خودش دوباره چی بشه؟ بچه دار بشه میگه در مختار و اومده یعنی بچه اینی که در شکمه و ولد, ولد جنین ولد جنين خب و نهى ان بيع از به عربون هم نه کرده اربون وازم رو آورده اینه که شخص یه چیزی رو میخره قسمتی از رو پرداخت میکنه به فروشنده اگر معاملشون انجام گرفت که اون جز قیمت حساب میشه اگر نگرفت بهوان هبه میره مال همون فروشنده ونهى عن بَيْءِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَنَاهِ كَرْدَ أَزْ بَيءِ كَالِئِ بِالْكَالِئِ يلي نسيئة دار مقابلة نسيئة دين بدين مقابلة نسيئة بنسيئة دين بدين بإن شخص كشخص بيگه يك سا از گندو خريدن بيك دينار ولي تحويل ددان هر دو تحويل ددان هم اون دينار نقدي نيست هم اون صا من يك سارو شلون در بالمقابل دينار مثلا هر تحويل تا تحويلات شو بعد يك ماه باشه مثلا اين ميگن ونهى عن بيع المحاقله والمضابنه الا في العرايا نه کرده از به محاقله و مضابنه مگر در بحث عرایق استثناست محاقله چه هست؟ محاقله این است که شخص بفروشه اون کاشتش رو در مقابل صد مثلا رتل از گندم صد کیلو از گندم مثلا آه هنوز تو باغ مثل ها مثلا گندم ها که روی زمینه اینا رو بفروشه در مقابل صد کیلو گندمی که در شده و خشکه و المزابنه مزابنه دیگه چیه؟ اینه که بفروش خرمایی رو که سر نخله مثلا در مقابل 50 کیلو خورما پس مزابنه محاقله که مزابنه در خورمای محاقله در گندم و هینچ ذرع دیگه الا فی العرایا بیگه در عرایا بحث مزابنه کن. چون در عرایه خوندیم که جایز هست شخص تا پنج بسق بیاد خرمای کهونه خودش رو در مقابل اون خورمای تازهی که روی نخله بده خاطر نیازی که پیش میاد که کسی میخواد خرمای تازه بخوره و نها ان بای المستر و نه کرده از بای مستر به مستر اینه که شخصی مجبور بشه بفروش اون چیزی رو که داره به خاطر دینی که برش هست یا به خاطر ضرورات زندگانی میگه میفروش اون چیزی رو که مالکش هست به کمتر از اون قیمت به خاطر ضرورت فقا این رو میگه اجازه دادن ولی همراه با کرد ولی خود اینجا یه بحثی پیش میاد منظور از به مستر که سادات شفیعیه مطرح کردند خب اون که مستره فمن استره غیر باغن ولا عادل اگر منظور بحث خریدار هست که اینو به قیمت پایی تر نخره از این طرف خب این میتونه با اخلاق اسلامی اساس سازش داره اگر بحث جامعه هست مخاطب که جامعه نباید در اون سطح پایین بشه لحاظ اخلاقی که طرف بیاد کالاشو ضرورتا بفروشه آ، باید کمکش کنم. این میتونه منطقی باشه ولی نمیتونیم مخاطب قرار بودیم اون که خودش چی شده مجبور شده چه کار بکنه پس و نه ان بای نه کرده از بای نتش نچ آقا بحث فرید کرده این کار غیر اخلاقیه طرف نیخواد جنس رو بخره ولی منجا طول معامله میاد میگه آقا من به این قد می تا بقیه رو چکار بکنه تحریف بکنه برای خریدن اینو میگه نچ یا قیمت کالا رو می بالا بالا میگه این این روزا خیلی کار بر داره میای یک شخصی است دو نفر در حال معامله میاد میگه آقا من پنچ هزار اینو میخرم ها هدف خریدن نیست هدف اینه که اونو چیکار کار بکنه فریب بده بله میگه این این روزه زیاده واقعا در اقتصاد امروز در بازارهای امروز تو شهرها که میری حالا این خیلی جزئی شده چه روش های دیگه برای زدن فرید دادن که به وجود متاسفانه و نهی عن یبیع عن ان یبیع رجل علی بیع اخیه و نح کرده از این کار که شخص بیاد بفروشه بر به ابرادرش این دیگه کلمه بی از ازداد هست کلمه بی چه هست؟ از ازداد هست یعنی هم به معنی فروختن داره هم به معنی خریدن ولی ما طبق شرحی که امام نووی داده اینو توضیح میدیم امام نووی در شرح مسلم گفته بی علا بی اخی یکی دارین یکی سوم علا سوم اخیح دارین هر دوتا معنیشون تقریبا یکیه ولی یک فرقایی دارند طبق شرح امام نووی رحمت الله علیه امام نووی گفته بی علا بی اخیه مثالش اینه که شخص بیاد بگه به اون کسی که یه چیزی رو خریده در مدت خیار مثلا از شما خریدم موبایلی رو ولی شرط خیار گذاشتم شخصی بیاد منو بگه آقا این معامله رو فسخ کن من به قیمتی ارزونتر بهت میدم یا چیزی رو بهتر از این به این قیمت بهت میدم آه؟ اینو میگن به علا به اخی یا به فروشنده بگه آقا فسخش کن من با قیمتی بهتر از تو میخرم یا بره پیش اون خریدار اگه حق خیار داره؟ یا بیاد پیش فروشنده که حق چی داره؟ خیار داره. پیش فروشنده بره من با قیمت گرونتر ازت میخرم. یا نه پیش خریدار به آقا من با قیمت عرضونتر بهت میدم. این حرامه. این جایز ببین اسلام معاملاتش مبلی بر اخلاقه. مبلی بر مصلحت و دفع مذررته. کلی ترین قانونی که در بحث معاملات وجود داره جلب منفعت و دفعه مذارت نصوص به این سمت حرکت میکنن نصوص جزئی چرا بعضی از در اصول میاد یاد ما قاعده کلی داریم و نصوص جزئی اولا کلی ترند یعنی جزئی ها به سمتی حرکت میکنن که هدف کلی هاست خب و این علی علصان اخیه و نه کرده که معامله بزنه بر معامله برادر این دیگه فرقش با اون معامله قبلی چیه؟ سوم با بی بله میگه سوم این است که اون فروشنده و خریدار با هم دیگه اتفاق کردن بر معامله ولی هنوز معامله رو نوستند هنوز معامله رو شخصی دیگه میاد به فروشنده میگه من ازت میخرم شخصی دیگه میاد و میگه چه میگه این هم حرامه بعد از استقرار سمن درست قرارداد قطعی نشده ولی این دوتا معامله شنو انجام دادن تقریبا هنوز عقدو نبستن این شرحش هست در شرح مسلم امام ن رفیع و نه این یبی بیا حاضرن لبادن و نه کرده که بفروشه حاضر برای بادیه نشین من شهری هستم برم برای بادیه نشین چی کار بفروشه به چه شکل شکلشیه که اول شهری نشین یه کالا آره به شهر یک شهری یک هزری ازش میخره. قبل از این که اون بیچاره با دینشین بدونه که قیمت این چیز در شهر چقدره واقعا چه قوانین بسیار بلند و عالی اگر اقتصادهای دنیا پایبند ببین اینا در مقیاس کوچک داریم و در مقیاس بزرگا منظور من نیست که فقط اون بحث با دینشین و بحث شهریه این دانشن و رو میشه تطبیقش داد در اینترنت تطبیقش داد روی نرم افزارها تطبیقش داد روی مسائلی که من شهری هستم شما هم شهری ولی من در علم نرم افزار چیزی سر در نمیارم شما سر در میاری شما هستی حزری من هستم اینجا بادین نشین در این زمینه ها اگر ما می بحث معاملات و بیع و به روز رسانی کنیم خیلی از ورشکست خیلی از فریب ها بازارشون جلوشون چی میشه؟ گرفته میشه. من که اصلا از نرم افزار چیزی حالیم نیست. ولی نیاز دارم به نرم افزاری برای دوکانم، برای کارم، برای اون چیزم یا بحث قیمت ها، یا بحث فلان هاشون. بحث ساخت سایت ها، بحث خیلی بحث وسیعیه. و انها ان رکبه دی و نه کرده از تلقی رکبه این دیگه چیه؟ این حضری میره؟ شهری میره؟ اون موقع ها دیگه ف... بابا دنیا قدیم نبود تلفن باشه کوهی زنگ بزنه آقا قیمتی الان نه الان انترنت دسته تا از تهرانی بهتر بلدی قیمتی مثلا اجناس چنده ولی این به این معنا نیست که پس فقه قدیم از کار افتاده نه بلکه ابزارها عوض شده بلکه عوض شده. اون حکم سرجاش باقی مونده حکم سرجاش جاشتیه آقا فریب دادن حرامه مجهول بودن در معامله قوائد کلی سرجاش هستن برای تمام قرنها به درد میخورن اون بدبختی که میاد میگه دین دیگه الان به درد نمیخوره قرن 1400, 1400 سال رد شده اون بیچاره نمیدونه که دین داره قوائدیست که برای تمام اصراها به درد میخوره در معاملات خب عبادت که تغییری نمی کند دین کهنه نمیشه، بلکه ابزارها عوض می شند ارفها عوض می شند. نوع معاملات عوض میشه. ولی اون قوانینی که ما رو از فریب دادن نجات بده در تمام قرنها اونها سر جاشون آقا هدف اینه که شهری زره نکنه بیابانی زره نکنه بلد نابلد و بازی نده کاردان ناآگاه و بازی نده مکانیک غیر مکانیک و فریب نده موبایل ساز در اون ساخت موبایلش اون بیچاره ای رو که از فن موبایل چیزی ب... الان دیگه چیزا خیلی تخصصی تر شده از قدیم الان من میخوام وارده مثلا موبایل بشن ساخت لانپای جدید بشن الان خیلی دنیا وسعت داره یعنی نیاز فقه خیلی به مراتب اگر منطقی شد بیشتر از قدیم هست برعکس اینی که اینا میگن الان ما نیازی به دین نداریم ها. نیازه به دین در اجتماع به مراتب شدیدتر شده از قدیم قدیم زندگی ای بود حالا عبادت که سر جاشون اونا که که و غیرکوانگی ندارند ارتباط با خدا که کوه نمیشه ولی در قسمت ارتباط با مردم، در قسمت معاشرت ها، در قسمت معاملات دنیای جدید این قدر پیچیده است ما با یک قاعده تمام جلوی نار بگیریم آقا نج حرامه، آقا غش فریب دادن حرامه، آقا جهالت نباشه. این در مکانی که پیش میاد، در بحث مبالغ فیش میاد، در بحث بازار جهانی خو خب بیم جلوتر. میگه نه کرده از تلقی رکبان. چون بحث فریب. تل... رکبان چیه؟ حضری میرفت خارج از شهر از کاروانای های تجاری می خرید بیچاره کاروان بر قیمتی که تو شهر بود خبر نداشت سپس مشتری می اومد با اون قیمتی که دلش می در بازار بفروشه خب این کارو نکن آقا بگذار خودشون بیان تو شهر مردم مستقیم بخرند تو دیگه چرا باید بری سوی استفاده بکنی بله و نهان بیعتین بیعتین فی فیبه و نه کرده از فی فیلبی بیعتانی فی بیعتین به بی چه معنی است توضیحات مختلفی داره ولی توضیح که ایشون داده میگه اینه که شخص بگه این خونم رو بت به یک میلیون دادم به شرطی که شما هم اون باغت رو به این قیمت به من بدی به یک میلیون بدی به این قیمت به بدی وقتی که خونه من برای تو باجب شد باقی تو هم برای من وقتی که خونه من به تو تعلق گرفت باقی تو هم به من بله اینو میگن بیعتینی شلبه که بعضی بزرگوارن تو های دیگه دادن خب اینی که صورت هاش خلاصه و عن بین و شرط و نح کرده است از بی و شرط بی او و چطور توضیح داده ایشون گفته بی و شرط مثلش اینه که شخص بگه فروختم این خونه, ب... این خونه هم رو به تو فروختم به شرطی که دخترت رو به ازدواج من در بیاری. این هم معامله هست و هم چی شد شرط می میفروشم این ای موبایل رو به تو به شرطی که تو هم اون چیز رو به من بدی بگه اگر شرط تابع معامله بود مشکلی نداره مثلا شما میگی آقا این موتور رو به شما میفروشن شما مثلا اینجا یا ولی به شرطی که خونه مثلا 5 ده کیلومتر اون طرفه به شرطی که من رو به خونه برسونی این تابع معامله است. این تابع چیه؟ در زیر مثال آورده مثلا گفته شرط جایز زمان که تابع خود باشه، مانند این که شخص بگه این گندم رو به من بفروش به شرطی که اونا بخونم که فلانجاست برسونه این مشکلی نداره خب و نه ان بی اثنیه و نه کرد از بی اثنیه این دیگه چه هست ثنیه همون استثناه هست مانند این در زیر آورده مانند که شخص بگه این باقو به تو فروختن جز یک درخت و اون درخت رو مشخص نکنه خب اینجا جهالت هست اما اگر گفت من این باقو بفروشم ولی این نخلو بتنم این فروش این موردی ندارد و نها انبعه سماری حتی تزهو و نه کرده از فروش سمار تا این که چه میشه؟ برسه رنگ بگیره چیکار بکنه؟ رنگ بگیره چون بعد از اینکه رنگ گرفت که قابل استفاده است از امان هم نجات شده پس این بود از نواهی در معامله امیدوارم که بحث ان خوب توضیح داده شده باشه جزاك الله وجزا الله العلماء